چو بینی که در سپاه دشمن تفرق افتاده است، تو جمع باش وگر جمع شوند، از پریشانی اندیشه کن. برو با دوستان آسوده بنشین، چو بینی در میان دشمنان جنگ، وگر بینی که با هم یک زبانند، کمان زه کن و بر بار بر سر